با درود با درود به شما شنوندگان محترم رادیو البرز فرشته نصراللهی هستم با برنامه نو از رادیو البرز به نام آنسوی پنجره قربت در این برنامه سعی کردیم هر هفته با یکی از هموطنان مقیم خارج از کشور گپ گف و گفتگویی بکنیم و بررسی کنیم دلایل وجود پدیده پناهنده پناهندگی و مهاجرت از دیدگاه خود مهاجران و تبعیدیان خود مهاجرت داستان هولناکی است که کمتر کسی میتواند آن را به آسانی در تصور خیش بگنجاند دردی تمام وجودت را فرا میگیرد و مجبور می شوی از تمام چیزهایی که به آنها عشق ورزیده بودی دل بکنی با چشمانی پر از اشک و تمام دلبستگی هایت مهاجرت از آن داستانهای های است تکرار نشدنی و زجرآور که نمیتوان به سادگی آن را درک کرد و با آن کنار آمد. پشت کردن به تمام آن چیزهایی که به آن عشق ورزه بودی و به آنها نفس میکشیدی. ولی الان آنها را باید در قاب عکسی نگاه کنی. آری، اینجا معبن گرم آرزوها نیست. اینجا سرای پر امید خیال‌های پر نیست. اینجا پر از از جور جورواجور با اندیشه های گوناگون تا که سر برمیآوری احساس گنگی کنی اینها دیگر زبانت را نمیفهمند. فهمند بغس گلویت را می فشارد چیزهای زیادی برای گفتن داری ولی مگر می توانی به زبان بیاوری دلت پر از قصه های ناگفته ولی اما مگر می توانی کسی را برای شنیدن پیدا کنی بر پایه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان پناهنده شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزار و اذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی اقلیتی توانایی به دست آوردن پناهندگی امن در کشور خود را ندارد. و یا کسی که دارای تابعیت و ملیت ای نیست و یا در بیرون از کشور خود پیشتر در آن بوده به سر می برد و به دلیل ترس از جان ترجیح می دهد به کشوری که بیشتر در آن به سر نمیبرده بازگردد و چرایی پناهجو شد علتهایی که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می شود می تعقیب و نقض حقوق بشر کشمکش های قومی، حوادث طبیعی همچون خوش سیل، زلزله و طوفان و مانند اینها و یا فقر و دستی و دیگر عوامل باشد حال سهم ما ایرانیان از این آشفتگی پناهندگی و مهاجرت چیست و کجای آن چراییها هستیم و به طور کلی این روند تا به کجا ادامه پیدا کند و صدها آیای دیگر حال پای صحبت یکی از این عزیزا میشینیم و جان دل میسپاریم به گفتههای این هموطن امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره درود دوست عزیز تو شما و به همه دوستان که صدای من رو میشنوند لطفاً اگر براتون امکان داره خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که چند وقتی که به دانمارک اومدید. بله حتما من اشرم الینیا هستم و الان مدت حدودن یک سال و 4 ماه هستش که در دانمارک پناهنده شدم و به صورت زندگی میکنم کنم. اه... براتون امکان داره بگید در کدوم کمپ هستید؟ بله حتما من در تحت قانون زندگی می کنم در شمال جزیره ایولند. لطفاً بفرمایید دلیل خروجتون با این اوضاع حوادثی که الان داخل ایران هست و با این شرایطی که وجود داره با این قوانین پناهندگی که وجود داره من الان تا یه حدودی براتون براتونم خوندم فکر کنم شنیدید. دلایل خروجتون رو اگر براتون امکان داره بفرمایید که برای چی از ایران خارج شدید و قربت رو گذیدید بله اگر بخوام جوزی هاتون دارید رو بگیرم که سالها بود که توسط یک مردی بسیار مستقین یا قیم مستقین مورد آزارعزی هستیدن چون که آزارعزی هستن طریفای خاص خودش داره ولی دلیل اصلیش که دیگه نتونستم اونجا دمونم این بود که من یه پروفوزال دکترا نوشتم که یه کار نو توش انجام بودم و اون همین بودش که پیامبر اسلام رو از دیدگاه متفکری به اسم نیچه که خب فکر میکنم خیلی شناخته شده هستش مورد بررسی قرار دادم به خاطر همین قضیه تحت قرار گرفتید همین نیست هیچ کس این اجازه رو نداره که بخواد از یه دیدگاه جدیدبارها قرآن یا پرنبر اسلام از دیدگاه های مختلف مورد توسط اندیش بندای اسلامی که خب تحت یک چارچوب تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی این کار را انجام دادن الان مراحل رسیدگی به پرمندتون به کجا کشیده شده؟ را تنظیم دادم که بالا روفای سوم متاسفانه من حذف کردم الان متزا دات کام هستم و امید واره که دات کام نتیجه بخش باشه شما به‌عنوان با یک ایرانی مقیم خارج کشور کسی که خانه و کاشانه خودش رو رها کرده و به کشور دیگه ای اومده با وضعیت اجتماعی هم که ما داریم و نگاهی که به زنان هست در ایران میخوام بدونم که واقعاً دلیل اصلی که آدما از کشور خودشون میکنن حالا چه خانم چه آقا و به کشورهای دیگه پناهنده میشند فکر می کنید چیه؟ در مورد ایرانی ها ما میخوام بیشتر صحبت کنیم حالا کشورهای دیگه مسائل و مشکلات خودشون رو دارن کشمکشهای قومی دارن حوادث طبیعی دارن یا نقض حقوق بشر دارن فکر می سهم ایران کجاست ببینید من فکر می کنم که اکثر ایرانیا ها... وतनشون رو دوست دارن چون شما گفتیم ما راجع به کشورهای دیگه صحبت هم کنیم در مورد اونها هم حتما همینطوره ولی اگه بخوام فوکوس کنیم روی ها همه ما اگر این آزادی رو داشتیم توان رو داشتیم که بمونیم توی کشور خودمون حتما این رو انتخاب میکردیم ولی متأسفانه اگر من بخوام با تواضع به مشکلی که برای خودم پیش اومده صحبت کنم اگر ما توی ایران کم حتی خیلی کوچیک اندیش باشیم یعنی بخوایم متفاوت فکر کنیم و بخواییم این فکر کردنمون رو بیان کنیم این نه به مزاق دولت جمهوری اسلامی خوش میاد و نه حتی به مزاق یک سری از آدم های معمولی به خاطر اینکه که که ما قن هاست در واقع که ما به خاطر کلمهی به اسم دین فقط مجبوریم یک سری چارچوف های فکری رو قبول کنیم و از اون خارج نشیم چرا که حکومت اسلامی به خطر بنابراین که همی بیتفاوت نبودن نسبت به سرنوشت انسان نسبت به سرنوشت ایران و کمی متفاوت فکر کردن در ایران خطرناک هستش مخصوصا اگر زن باشی چون زن بودن همینطوری در ایران کار سختی هستش چه برسه به اینکه شما بخواین یک زن دیگر اندیش باشی یعنی شما فکر میکنید که نبود آزادی یعنی همون بحث نقض حقوق بشر در ایران خیلی شاخصه نسبت به پناهنده درسته؟ بله البته شاید، شاید من خیلی خوشحال هستم که در ایران در حال حاضر جنگ نیست امیدوارم هیچ جای دنیا هیچ وقت جنگ نباشه اما ما زندانی سیاسی داریم که توی زندان هستند جنگ که توی دانشگاه باشن به جایی سر کلاس های درست باشن یا در حال زندگی معمولیشون باشن شما اگر من... ازتون بپرسم حالا اگر دوست داشتید تمایل داشتید که جواب بدید شما در چه رشته درس خوندید و در چه مقطعی خواهش میکنم من ادبیات انگلیسی خوندم و فوق لیسانس دارم یا همون کارشنسی هر شد اگر بخواییم باستیش رو بگیم ولی خارج از کشور رو برای زندگی کردن بله بناچار که واقعیت که من زندگی خوبی توی ایران داشتم. اگر بخوام فاکتور بگیرم اون سایه اون مدری که هرگز خدمتتون متأسفه که من آزار میداد و این اتفاقاتی که اخیراً در ایران برام افتاد. من حالا یه سوال خصوصی تر ازتون بکنم. همین الان اگر شما به اون آزادیهایی که در ایران هست دست پیدا کنید به کشور خودتون برمیگردید؟ درستت. واقعیت اینه که من هر جای دنیا که باشم قلبم برای ایران میتپه و به نظر من دنیا خیلی کتاحتر و بیرزشتر از اون هستش که توی قربت بگذره و اینکه من حتی نتونستم از پدر مادرم خداحافظی کنم هیچوی خوشایمتر از این نیست که جایی نفس بکشید توی خیابونای راه بری که ازشون خاطره داری در آخر اگه حرفی دارید که به هر صدا شما رو خیلی ها میشنمن حالا با دولت دانمارک، با اداره مهاجرت، با وزارت امور خارجه دانمارک یا ارگان های حقوق بشری میتونید بزنید از همین جا، از همین تیریبون استفاده بکنید و ما هم سعی میکنیم که صداتون رو به هر جایی که با لازم باشه برسونیم. اون لازمくない. ببینید، واقعیتش اینه که من همیشه تو زندگی سعی کردم منصف باشم. الان هم اگر بخوام منصف باشم باید بگم که شرایط زندگی توی کم، حداقل کمی که من هستم، شرایط بدی نیست. شاید حتی بشه گش شرایط خوبی میتونم ببینم که همه دارن سعیشون رو میکنن که پناهنده های اینجا احساس این رو بکنن که دارن توی خونه های زندگی میکنن. علی میدونید چه سخت این قسمت و این زندگی. توی کمت یا قبل از جواب گرفتن این هستش که شما در یه محله انتظار رو میذارونی یه زنگیتون دوچاری رخفتی رو کب میشه اه که اه خیلی خیلی دردناکه من میتونم دولت دامات رو بفهمم من میتونم وزرد عموی خارجا رو بفهمم به خاطر که خیلی ها به دروغ اعلان پنهندگی میکنن یا هرچی ولی از اونها هم میخوام که من رو بفهمم یامثال من رو بفهمند این یه یکی از تهاوزهای منو که میدونید یه واقعیتی که همیشه من با احساس با خدا فکر میکنم اینه که یه حیرت طرغ در مورد کشور من و بقیه کشورهای خاورمیانه این هستش که متاسفانه ما منابع طبیعی زیادی داریم مثل منجمل نفت این که بس دولت های هستش که در نهایت روی کشورهای ما هستش به طور مستقیم یا غیر مستقیم حمایت میکنن جمهوری اسلامی و یا بقیه کشورهای دیکتاتوری رو به خاطر که مطمئنن به هست امیدوارم برازون کنم روزی برسه که انقدر مسئله قدرت انقدر مسئله پول برای کشورهای قدرتمند دیگه جذاب نباشه تا نه فقط من به عنوان یک ایرانی که بقیه ای آدم‌ها مثل آدم‌هایی که از سوریه یا عراق یا افغانستان میان بتونیم برگردیم به کشور خودمون. نکته بسیار بسیار جالبی رو گفتید. نکته بسیار بسیار و انگیزیه که اگر این قراردادها و حمایت ها از نظام نامشروع جمهوری اسلامی نباشه، ما فکر نمی‌کنم هیچ پناهنده‌ای حتی اقل از ایران به کشورهای اروپایی بیان که ما سرزمینی کهن با آرزوهای بزرگ داریم که امیدواریم یک روزی هممون برگردیم به کشور خودمون از شما خیلی ممنونم امیدوارم که زودتر جواب قبولیتونو بگیرید و قول اینجا به ما بدید که اولین به اولین جایی که خبر بدید که قبولیتونو گرفتید به رادیو ما باشه ما این خبر خوبه شما رو پخش کنیم متشکرم حتما با کمال مل البته که این کارو خواهم کرد من هم ممنون از وقت و فرصتی که به من اختصاص دادید اینکه من هم آرزو می که یک روزی به که ما همدیگر رو در ایران ببینیم و شما فعالیت فرهنگی و اجتماعیتون رو توی ایران انجام بدین و البته در شرایطی که هممون خوشحال باشیم امیدوارم من از اینجا از شما خدافیزی بکنم و آرزوی موفقیت براتون می کنم من هم, هم تو از شما شرمانداری عزیزتون خدافیزی می کنم با امیدن برامدن خورشید صلح و آزادی بر تمام گیتی و تابشان بر فرات ایران زمین. امیدوارم که مرتوجتون قرار گرفته باشه، ما تاثی قرار گرفتیم، حتما شما تاثی قرار گرفتید. این روزگاری است بر ما تحمیل شده، بر ما پناهندگان و تبعیدیان خودخواسته. امیدوارم در هیچ جای جهان پناهنده دیگر نباشه و هر کسی در معمن و خانه پدری خود زندگی کنه. شاد و درست باشید. صندل پایدار.